باسرين حوري خلينا نكتب قران بنيو حكمتك اني نسنده كتابي مجاور من جمر نسيني حجر الكرياني علي گمار کردنی دلیر سلین گگرانی عزیز و خوشویز شوتن باش و سلاوتن لیبه خوشحالین لبشی هشتاوحوتی خوید نوی کتیبی چشتی میجیوری هجاری مکریانی حتی نولاتن فرم لګلمان بن حجرې مکریانی لا بردوامي يرنوي بسرهه تکانی جیانیدا دس به گشتک دکات برو موسکو کله لن کوریزانیری اکادمی علمی شوراوی او دعوته نامیان بوhato او د نو سه لاخره اوخري پاییز سال 1907 توسيده لیان کوریزانیری اکادمی علمی شوراوی او دعوته نامیک بو کوریزانیری عربي او کوردی هات ک شش کس بنیرن څوار پیر عرب لیان کوریزانیری عربي او کملو من لیان کوریزانیری نشان کراین هر ووک ک چوبو ما پاریس چندانه یک شرفنامه برد و پیشکش بشوی نوار زنستیکان و پیوانی وک توفیق وحبی و ادمانس و مستر مکنزیم کرده بو، دوازده نسخم شرفنامه دگل خون با روی برد. بوجاری دو هم پشت سال دیسان لروجه که پربفرده گیم موسکو لأوتیل کانتینینطال لمایدانی سور که اوتیل یکی قدیمی و زورجوان و بشانوشکا بو، دیار بو زور میوانی بقدرین هر کس جوری که زور ساز و تیار و جوانمن ها بو جران که میوانی نو بوم ام جر میوانی اکادیمی علوم بوم چا کیه نبو عربکان که هموی میشک پوچال رگز پرستو دجی کرد و دجی روسی بونو زور بین سالها معاشخوری انگلیسیان و سفیلی زمان نوری و پادشایی بون هیچین کلمه اک روسیان ندازانی ترجمان هموان داکتور کمل مزهربو هر قصه کی به تامیان و هر که کندنوان کمل به ارزوی خوی ترجمه دکرد. واي په حاتبو ک عربکان بوبونه غلطتج ریزنای نی موسکو به تایبتی داکتور پولیوی ک سرپرستی میوانداري ایم ای پی اس بو هر بدل عربکانی ناخوش دویستو حزيله چارین کرد دو جار به اون هر دعوتی بماله خوی کردین سی جلسل اکاديمي شوروي دغه زناین قصله پیوندی دوستانه اکادمی علمی عراق و شوروی دکره لمجلس یک دازانه یک وتی وعده درکوي ک کردستان پيش لامه شو نه کی رجالات زورا ودان بو زنه یعنی سواری شوروی لملبندی سنجار شو نه واری گندچان لبن دی و توا که خروکان بزنجیره و بدوري میدان یک د دروس کراون خاون نشانه کرد 50000 سال له پیش فکری دفاعی منظم نه بو خلقی گون توانی وانه برامبر به دوجمن گون جان وقلا خلخنه و دال تمدن چې گوریان هبوا منیش لولام دا قوتم زور به دا خوه شوریو زنای بمر دوی هزار سال مانو خریکن بلم اوانی استا زندونو لسر زوینو قتل او عام دا کرین هیڅ نرخیکن بودانن راوه بریا نی اووند کبه اسواری کون مانو خریکن به زندو کانو خریګونه یو لمردن رزگار تان بکرده این شرفنامون با اکتیب لینینو زور لکتیب خانه کانی تر نرد نسخه کشم پیشگش کش با انستیتیوی روشهلات ناسی کرد که غفوروف ناو با سری رادگیشت وقتی میوانی کمن تنیا حفته اگ بو بردیانینا لینینگراد دو شو ماینو و روشک میوانی کریم ایوبی بوین هرمونو دکتور کمال کریم زور گررابو سرو سمیالی بوز بو بو بو ب وزیل از منشناسیه نبو شو تلفونم خانم سیدارو دین کو کرد ادرسی دامه که هر دبیه بچم میوانی بوم دیت ما پیر بو بو چاوی بی حکم بو بو دو کوری لاوی هبو که لمادرسه موسیقی بونو کاریان ناکرد میر دین ما بو. زور مالکی فقیری هبو و درکوت لروسیاش لر کسان کلاکاری زور بجه ل لبیر دست نوا دوای مموزینم لیا کرد که خوی بچه پیگیندو بروسی م سوین خوارد ک هر تا قنسخه یی وتم لیت ناسینم لا لیننګراد و منو کمالچو نایریوان عربکان نش چونه طاشکند ک چوینه به ملای اوزبکو کتیبی عربی بکویو لباکو یکتری بګرینو زور لکوردکان به پیر مانو هاتن شو جاسم جلیل بیر دنیه مالخوی کشام من بداتیو شوبمن هینیتو اوتل دتوانم بلای جاسم مالی هنر بو اردوخانی کورې دکتورای له ادبیاه ده بو. جاسم بو خوې شاعرو نمائش نامه بو جمیله اک چی موسیقاه رغب دو 2000 آهنگ زور رسانی کوردی خسته بو سر الف بای نوتو چاپ کرابو رادیو یریوان بو, بو مال کاریده گره شو جمیله با پیانو هوای حل پرکی شیخانی لیدا جاسم و کوچو هستان برقصن کمال من تیم نازانم من ها و تابع باش دگالیان قلیان رقسیم من باوم لکمال خوشتر بو ک کرمنجی اوانم دزانی. بیانی او روجا اکادمی علومی ارمنستان دگل حاجی جندی شاعر که پیربوبو پیربو بو, بو بوینه ناسیو کورد کرد سروکی که رو باری ریخرای کومونستی بو زور بلامو بقیمت بو او تی سپردو من شش سال دا تاریخی که زور پانوبرین و همو لعنه کرد و کردستان ساز بدره او پیوشم دیت و باسم کرد لباکان افسره که روسی بناوی یعقوب و بغداد بخشوان مال شابو، زور کیف من پیکاد عرب شامی لوف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 کبرایی که پیری اینک لچاو ختی میخی دخوینده و قد تو فارسی و کردی و بروانی نخوینیه و ترجمه به ترکی پیدا جاری کن سروک اکادیمی لوحهی کی نشاندم وطی او فلانش ده پیرا لیمور بوا وطی های تو چوزانی زانی؟ تو نزانی ختی میخی بخوینیه و سروک اکادیمیش وطی استاد با المنی نسرابو دن امنو خطی میخی تو هزار گزمان کردیک بان هشټ نیکردین بو گوندی کی کود نشین لنزیک چای ارارات تا وک یزیدکان چای شنگال بو لویش به دهول رقص یکمان خل نانی چی داینی چوینه نشانگه کبید او 12 عشیره ارمنیانو چقاوه ک قتل عام کړدون نشانگه کیش لنزیک چای ارارات هبو مسره بو برایتی کورد او کلیرا بګیشت ترکاند چونه وو نیشتیمانی خویان برایان پرستوه لاؤا کرده اکم تاقی کرده و که حزده اکم با بیدرو دوروی وضعی کرد لارمانستان چونه بونباز بکی و تی، راستی که اوی ملتی ارمانی زور دگل کرد چاکن جگه حقوقی قومی اونده شروعی قراری دا و ارمانی پتر لگل من بچاکه دبزونه و اگر دا کس لیک راده خوندواری و به یک جور کار نامو داوی کاری که دولتی بکن یکیان لو لا ترون بيه كردكا قبولدكن چون كا من ملتي كمينو اقلية تا حرمت من زياد لا من قسم کرد وتم سير بان يكو دو هوا بيه. کرد لاجورجستان حقیقی لپاش کلاسی حد ک اجباری بچه مدرسه و بچه ت خواندنی بالا نه چار به حلقه بوم یان لینینگراد کردی آذربایجان زمانی خوان لیبرراهوتاو همون بون ترک کتیل ارمنستان هم درس با کردی ها هم رادیو رجنمه جلو زمانی کردیش آزادی آزاده من و آنان اول نجیبات آرمنیانا نقل نشوری دناتویند بر دو به برنام بر بکرد فرقی گورجستان و آذربایجان و هبه هب. لحاظیک دار که کردی گورجستان دو اون دی کردی آرمنستانن. کمال و تی نمیرم، ترجمه بکم. لواکی کرد و تو بکرمانزی بله تا است ترجمهای کم. که ترجمه کرد کابره ازربایجانی هست تا دستی خسته دستم. و تی لمرون تو راز دکیو آرمنی زور لعما انسانیترن و کیفیشنبو غیرتی ده رو من آمد گود. بایانی روژی دوام چوی نصیر کتیب خانه گوره یریوان زور گراین خوان و سرپرستی و بومیوانان ممنوع بیبینن بلا مندتان بمعویش بچن پلکانیگ دا چوی نجرزمین هموی کتیب خطی بو انجیل یکی نشانده این گوتي اوه کردیو هشت و سال عمره دو کتیب لناو شو شده بون یکیان زور پرگوره یکیان زور بچوک و خرپن وتی اوانه هر دوک انجیلن لپیستی آسک نو سراون پیشو 22 بوم که ا لپیستی آسک نو سرا بو بلام لا مو ابو ل دیوی جوری پیستک و نو سراو با کول ک و حل جیراو غتم د توانم د سیلیادم وتی نا ممنوعه وتم کور د مراق و خوم لی ناخوی مدیر پیابه کی زور رو خوش و خن شیرین بو شو کلی لیکی یناو نوسراوی سر پیسته آسکی درینن. دستم لیدا. چاکترین کاغذی تورمی قدیم چون بو آواز صاف بلان بیبری قو نرم. تازتی گیشتم نوسین لپیستی آسک یعنی چی؟ شرفنامه یکی نیشان داین بجوانترین خط نوسرا بو. دوری زیرکف تو نقاشی کرابو. چل سال دوی هوالین شرفنامه نوسرا بو کدیگود لقیمت ناید. جماره که پی یاداشت کردم که با جماره تاریخ جلانوی شیخ عبایدالله نهری لکتیب خانه قدسی رازوی لمشهد هیا. نه میکروفیلم نه نسخه مند دادنه بلکه طول عراقه و پیدای که که هم جماره من کرد هم نازنم هیا یا خود نه. که تیاده چوی نگوندی کردکان و سیری نشانه یادگاری که من دکرد آلای ترکان لدامین ارارات و دیار بو. هیچیم بو نما بو. دو جنوی سر با کلکن با جس رگزی ترک ده زوریان یا دیاریده می کلگشت یا عزیزتر دو تابلوی بر جستبو دیمانی هر دو چیای عرارات پر لبفری دنوان اوار وقت لایریوان و چوینباکو شو گیشتینو عربکانش حات بون دکتور قادری اصو مالو مندالکانی و جنی علی گلاویج زو زانی بویانو حد نه بخیره لبیرم چوبلم بلیم، هرکا موسکو نموسکو کونه دفتر یکی چارده سال لوا برده بو. ادرسی فتحی خوشکنابی تیدابو تلفون من کرد. جنی یک جوابی داو که زور سال لیره نماوه. بلن ادرسی تازیان او جماره تلفونه. تلفونم لیکرد. گوتم فتحی دم و بناسم و وتم فكر بكوا باخوا بخوا حجاليكم داناسي بلام نعزانم لكوه غوري غنبوا دنگ توزيگ لو دكا وطن وره لفلان وتيلم أما اما هاتيش هاتي چونت بناسموا وتي وق جاران دريجم ريشم سپي بوا کلاوه اخي قوشي بورم بسارا هاتو هاتو برد بردميو مالا خوي جني ازربايداني نما بو جني روسيه نابو لأن الانستيتيو رنشلات ناسي لبشي تاريخ دامزرابو خانوي لاموسكو درابو يو زور سازبو وتي اسماعيل كلا توريز هاولمان بوا لباكويا با تلفوني بوب کم اسماعيل چوني چدكي انج جويملي بو لولا مخصق فتحي داوتي هجار مبير هاتو توددگري محالم نيا زور ريكوتكي سير بوتي آرام بگرا آرام بگرا امرو هجار هاتو تمال من حاق سيدا قلبكا جاآوش و هرگی مباع کو، طاوله اوتیل توریس نحسابو ما. اسماعیل هات. و تی، با بران بومالی ایما. رحم قاضی تلفونی کردو برکو خی. و تی، من خوشم. نمتوانی بیم. تو و رو دایکی شم لیره. منش بتم رحم. من جناینم. دایکت بد به ایکی خیتر. دگل اسماعیل چونمالی رحم. نیهش بندبم. بردمیه مال خوی کیج کی بنایو فرزانه هبو موسیقای زور خوشی بولادین. بداخو 29 کاسمایل جوانه مربوو آذربایجانی کی خالکی سلمز بو 29 کا پروفسور جعفر خندان مردو بیانی بناو شاری باکو یاندا جرای شومیوان سره کی اکادمی آذربایجان بو علی گلاویژ ملوی دی تو وتی اقرار به سال تاریخ ابوری آذربایجان بنسمو بو یکم جار میوی خور معلوم دیت و تم طالب برچاو نه خون نه رئیسی اړه مكان ملي لوونه ابوک خان وكيرئسي اكاديمي نا خوشا دی ود حقوق تنچنده یمل عراق زور خوشتر دژن کلو جګی ادا زور احمقانه بو پیو شرمیا کړ لا خو حافظی دمن غتم سپاس بو خانمی خانه خو ک او چشته خوشانه لینو او توان و من بخیو کا خانمتی د نه او پیو د زان دلسي معنی هيا من هر له بیانی و زحمت بکشم ب پیوان بلن ممنون ممنون لبیانی که زور سردی شویدو همده حتینه و موسکو دکتر کمال عریضی که دابو کچند روژک دیوه مطالب که چند اسنادیک که چند اسنا که قبول کرا که کمالو من بیست روژی تر لب موسکو بمینینو میوان بین او روژه چوین بازارو بر دیانینا دیدنی موز آرام گایلینین ما مستساید جمیلی کی پیرمن در قلبو هرده گود او کافر خدا سر روسانا را استابوین بفرد ټورمانډي به چې سر قبر یې لینی چې متنیشت یوتم استاد خدای زیارت یې تقبل وکاو نیازت پک بینې عرب روینو د گل کمال ماینو شوینه اوټیل کې در د فتحی درم د چومه مالی شوانه رستوران پکو جارانی عزیز و خوشی ویز، لرده اومشی وای دینکو تاعی بشه. هشت و حاوی خمین نویکتی بیچشتم جوری هجاری مکریانی تا شبه کترول بشه گتر دعای نوا و شو شوتن آرامو بجین با کامرانی.